صفحه 496 و اگر من به دنبال تو به اینجا نیامده بودم چه بر سر تو میامد؟ ای سرور من کجا میروی؟ کن تا من هم بیایم. من همچنان به راه خود ادامه میدادم و این مرد پر رو با صدای بلند فریاد میکشید و مرا صدا میزد و همه مردم رفت بذار و حتی ساکنین خانه ها از در و پنجره خیابان را نگاه میکردند تا ببینند چه خبر است به گفتم آن همه آبرو و رسوایی که در مقابل خانه امام جماعت برپا کردی کافی نبود و حالا باز هم دست بردار نیستی این را گفتم و به کوچه دیگری وارد شدم بس همین مرد سلمانی مرا دنبال کرد برای فرار از دست او به کاروان سرایی پناه بردم و به دربان که مرا می گفتم این مرد را به داخل راه نده او هم به همین ترتیب رفتار کرد بعد شرح واقعی را گفتم این مرد سلمانی از پشت در فریاد می‌زد و دوشنام و ناصزا به دربان میداد من مدتی به درمان پای ناقص و دردناک خود پرداختم ولی متأسفانه این نقص برای همیشه باقی ماند و چون آبرویم در شهرم رفته بود ناچارا مقداری پول و ثروت که برای مسافرت لازم میدانستم با خود برداشتم و بقیه دارایی و املاکم را بین خویشاوندانم تقسیم کردم بغداد را ترک کردم و به این شهر آمدم امروز که این مرد سلمانی را اینجا دیدم ناچرم که از اینجا هم به شهر دیگری بروم مرا میبخشید که نمیتوانم در این مهمانی در کنار شما باشم وقتی سخنان آن جوان به پایان رسید به سوی در حرکت کرد و صاحبخانه هم تا دم در به دنبال او رفت بعد از رفتن آن جوان میهمانان رو به مرد سلمانی کردند و گفتند آیا اظهارات این مرد جوان درست بود؟ مرد سلمانی جواب داد آری اش درست بود. و من میخواستم به او کمک کنم ولی او قطع خدمات و راهنمایی های مرا نمیدانست. آنچرا که من درباره این جوان گچالده دست و نیک سیرت کرده ام اعتقاد داشتم که باید انجام میدادم. بهضاوت درباره خوب و بد آن دختی شما می اگر من به خانه ئمان جماعت نرفته بودم و آن جوان را از آنجا بیرون نیاورده بودم حدس بزنید چه خطری او را تهدید می آیا بدون مداخله من امکان داشت اوجان سال از آن به دربرد؟ آیا این جوان حق دارد که از دفتر منگل من باشد و این همه ناسزا و دشنام به من بدهد؟ هر کس که برای دیگران خدمت و دلسوزی کند، عاقبتش ناسپاسی و ناخوش‌نودی از سوی دیگران است. این جوان مرا به پرگویی و پرروی متهم سازد. در حالی که ما هفت برادریم و من کم آنها هم و از همه آنها داناتر و هوشیارتَرَم و برای آنکه سخنانم را بهتر باور کنید، ناچارم سرگذشت خود و آنها را برایتان تعریف کنم. در گذشت مرد سلمانی در زمان سلطنت خلیفه منتصر و بالله که سلطانی عادل و جوان مرد بود و به دستگیری از فقرا و درماندگان میپرداخت حومه شهر بغداد گرفتار ناامنی و راهزنی از سوی ده تن راهزن گردید و هر روز جان و مال مسافرین مورد تهدید قرار گرفته بود سلطان رئیس داروغ خانه را نزد خود فراخاند و فرمان داد تا راهزنان را اسیر کند، و برای مجازات به شهر بغداد آورد رئیس جاروغه ها نیز با تداری از افراد به جنگ راهزنان رفت و اتفاقا در روز عید نوروز توانستند هر دهتن راهزن را با خود به شهر بغداد بیاورند در همان روز همانطور که از کنار رود دجله رد می شدم ناگهان دیدم ده نفر با لباس‌های گرانبها و چند تن از مامورین می میخواهند به زورقی در دجله سوار شوند من هم که روز اول عید بود به تصور آنکه آنها به میهمانی به خانه کسی میروند همراه آنها سوار زورق شدم و بعد از آنکه در مقابل قصر سلطان کنار دجله پیاده شدند، من هم همراه آنها رفتم. همه آنها وارد قصر سلطان شدند و من هم با آنها همراه بودم تا به بارگاه خلیفه رسیدیم. همین که خلیفه آنها را دید، دستور داد دشخیم هر ده نفر را گردن بزند. دشخیم هر ده نفر را به صف کرد مرا هم در انتهای صف قرار داد آنگاه آنها را به ترتیب یکی بعد از دیگری گردن زد تا نوبت به من رسید. در آن هنگام دشقین مأموریتش به پایان رسیده بود، دست از کار کشید. همین که خلیفه دید من آنجا ایستاده‌ام، ترجب کرد و از دشخیم پرسید: چرا معطلی؟ گردن نهمی نفر را نمیزنی؟ دشخین پاسخ داد: یا امیر مؤمنان، من هم ده تن راهزن را گردن زدم. و جسد آنها را روی زمین افتاده و ممکن است حضرت سلطان خودشان آنها را شماره کنند و ثابت گردد عوامل سلطان اجرا شده است آنگاه خلیف اجساد را شماره کرد و گفت حق با تو است سپس به سوی من نگاه کرد و پرسید پس تو کیستی که با راهزنان در یک صف قرار گرفتی؟ در پاسخ خلیفه جریان واقعی را به عرض رساندم خلیف خندهاش گرفت و پرسید پس چرا وقتی جان خود را در خطر دیدی باز خاموش ماندی و حرفی نزدی من پاسخ دادم مرا مرد خاموش لقب اند. چون از قدیم گفت اند سکوت بهترین زیور مرد است من هم سکوت کردم و نتیجه خوب هم گرفتم خلیفه دوباره خندهاش گرفت و من آفرین گفت و فرمود حقیقتا لقب مرد خاموش کاملا برازنده تو است در حالی که آن مرد جوان مرا مرد پرگو و پرحرف معرفی می‌کرد، از آن پس من این شیوه و فلسفه را پیروی ام و کمتر حرف میزنم و به همین جهت مورد احترام دیگران هستم و در زندگی خوشنود و راضیم. سخنانم که به پایان رسید، خلیفه پرسید درباره از سخنی بگو آیا آنها هم شبیه خودت هستند؟ پاسخ دادم آنها با من کاملا فرق دارند. همه آنها پرحرفند. و هر کدام از یکی دیگر پرحرف‌ترند برادر گوش پشت است و دومی دو دندان‌هایش ریخته و سومی از یک چشم نابیناست چهارمی از دو چشم نابینا پنجمی هر دو گوشش بریده است ششمی لپ‌های شطوری دارد و هر کدام از آنها سرگذشتی شنیدنی و مخصوص دارند که خصوصیات هر کدام از آنها را بیان می‌کند چنانچه سلطان دقتی به شنیدن داشته باشند تعریف کنم سرگذشت بزرگترین برادر مرد سلمانی باکبوک بزرگترین برادر من بود که بعد از مدتها شاگردی خودش استاد خیاطی شد و دکی برای خود کرایه کرد خیاطی او درآمد کمی داشت فقط می توانست زندگی را به سختی بگذراند مقابل خیاطی او آسیابانی بود که درآمد بسیار داشت و در آنجا زندگی میکرد این آسیابان زن بسیار زیبایی داشت یک روز برادرم که در دکان مشغول خیاطی بود سرش را بلند کرد و متوجه شد که زن آسیابان از پنجره خانه اش او را تماشا می کند. زیبایی زن او را شیفته خود ساخت اما زن توجهی به او نکرد و فوراً پنجره را بست و تا آخر روز دیگر آن را باز نکرد. خیاط بیچاره تمام روز حواسش متوجه زن آسیابان بود و دو سه بار هم سوزن را هنگام خیاطی در دست خود فرو کرد. به هر حال پایان روز فرا رسید و خیاط به ناچار دکان را بست و به خانه رفت و, تم... و تمام شب را هم در فکر زن زیبای آسیابان بود. هنگام صبح از بستر بیرون آمد و به دکان رفت و تمام مدت در انتظار بود که پنجره مقابل گشوده شود و او چهره ی تابان زن آسیابان را ببیند. اما زن فقط یک بار پنجره را باز کرد. روز سوم خیاط بیشتر از دو روز گذشته خوشنود بود. زیرا وقتی زن آسیابان پنجره را گوشد به صورت او خیره شد و بعد پنجره را بست. زن آسیابان که دانسته بود برادر احمق من به او دل باخته است. هر روز یک بار پنجره را می و نگاهی به او می و فورا پنجره را می و بعد هم با صدای بلند خنده سر میداد. زیرا او برادرم را مسخره می و از راه مزاح و سرگرمی به ترتیب هر روز با او بازی می کرد. اما خیاط موضوع را جدی گرفته بود زن آسیابان تصمیم گرفت که حسابی خیاط را دست بیاندازد او کنیزکی جوانی داشت و روزی یک قبار پارچه توسط او نزد خیاط فرستاد تا طبق الگویی که فرستاده بود برای او لباسی بدوزد خیاط بسیار خوشحال شد و پیش خود تصور کرد که این پارچه نشانی آن است که زن آسیابان میخواهد به این وسیله عشق و علاقه خود را به او نشان دهد خیاط به گفت به بانویت بگوی که تمام کارهای مشتریانم را کنار میگذارم تا هرچه زودتر لباس شما را بدوزم و تا فردا هم این لباس آماده می‌شود. میشار خیاط تمام روز و شب را صرف دوختن لباس زن آسیابان کرد تا پایان شب آن را آماده کرد. صبح که کنیزک برای گرفتن لباس آمد به خیاط گفت بانوی من سلام رساندند و از شما تشکر کردند که با این سرعت لباس او را دوختید. این را گفت و رفت. اما دوباره برگشت و گفت فراموش کردم بقیه پیغام را به شما بدهم بانوی من گفتند شما این چهار شبه گذشته را چگونه گذراندید من که از فکر شما خوابم نبرده است خیاتم با خوشحالی گفت من هم از فکر ایشان این مدت را نتوانستم خوابه راحت کنم برادر ساده لوح من قضیه را جدی گرفت و در انتظار محبت بیشتر از سوی زن آسیابان روز شمالی می کرد. ولی ساعتی بعد. کنیزک با مقداری پارچه از نزد خیاط آمد و گفت بانوی من از کار شما خیلی خوششان آمده و این پارچه را دادند تا دامنی هم برایشان درست کنی خیات گفت دامن بانوی تو تا هنگام شب آماده خواهد بود زمین تا شب هنگام زن آسیابان چندین بار پنجره را باز کرد و با کرشم و ناز برادر سادلوه مرا نگاه کرد دامن حاضر شد و کنیزک برای بردن آن آمد ولی نه پولی برای آستری و نه برای عجدت خیاطی آورده بود و دامن را هم گرفت و به خانه آسیابان برد. این خیاط بیچاره تا پایان روز در انتظار بود و امید داشت که اواجت او را خواهند داد. ولی در پایان وقت ناچار شد که برای تهیه شام از کثرره دیگر مقداری وام بگیرد. صبح روز بعد کمی به دکان خیاط میرود و میگوید بانوی من نزد شوهرش از شما و کار شما تعریف کرده. و لباس را به او نشان داده و شوهر او میخواهد شما را ببیند و بانوی من میخواهد به این وسیله بین شما رفاقت ایجاد کند که رفت آمد برقرار شود. برادر ساده من هم با خوشحالی نزد آسیابان می رود او هم مقداری پارچه او به او میدهد تا بیست عدد پیراهن برای او بدوزد برادر من مدت پنج تا شش روز پیراهن را میدوزد و نزد آسیابان می میآورد وقتی آنها را به آسیابان میدهد. دوباره آسیابان پارچه دیگری به او می و چند دست زیر جامعه می خواهد. سپس آسیابان از برادرم می پرسد تو برای همه اینها چقدر می شود؟ برادرم پاسخ می 20 بیست درهم در آن وقت آسیابان به کنیزک می گوید برود و پول بیا برد اما کنیزک درست خود را خوب آموخته بود به برادرم اشاره می کند که اگر پول بگیری کار خراب می شود یعنی آنچه بانویم رشته است خواهد شد. خیات سادلو هم میگوید ما همساییم اجاله ندارم وقتی برادرم از خانی آسیابان بیرون آمد به سراغ من آمد و مختصر پولی از من وام گرفت تا چند روزی را با آن بگذراند. بعد از آن که چند روزی سفری شد برادرم به دیدن آسیابان رفت. او که خیام می برادرم برای مطالبه اجرت خیاطی به او مراجعه کرده به کنیزه دستور داد پول بیاورد. تنیزن چون همونطور که گفتم دست خود را خوب می و با سر به برادرم اشاره کرد و برادر ابله من هم گفت من برای پول نیومدم اجله نیست بعدن حساب خواهم کرد هنگامی که برادرم از خانه آسیابان بیرون آمد سه نراحتی با خود به همراه داشت درد عشق زن آسیابان درد گرستنگی و درد بی پولی. زن آسیابان فقط تمک کار نبود بلکه علاوه بر آن زن بدخواه و بدجنسی هم بود و با وجود آنکه لباسهای خود و پیراهنهای را با کمک چشم و ابروی خود برایگان توسط خیاط ساده له دوخته بود تازه میخواست در برابر اشفگری های خود که برادرم دلش را به آن خوش کرده بود انتقام دویی هم از او بکند با توانی که با شوهر خود کرده بود آسیابان برادرم را به شام به خود دعوت میکند و برادر من هم با شادی و خوشخیالی به آنجا می می‌رود و شام سادی به او میدهند. آنگاه بعد از شام آسیابان و همسرش در آغوش یکدیگر خوابند و به برادر احمق من گویند چون پاسی از شب گذشته در همان خانه بخوابد او هم می نیمه های شب آسیابان برادرم را بیدار می‌کند و می گوید چون قاطرم مریض است و قادر به کار نیست اگر زحمتی نباشد تو به جای آن آسیا را بگردان او هم میگوید با کمال میل آنگاه آسیابان خیاط را به جای قاطر قرار می‌دهد و با شلاق خود بر او مینوازد برادرم می‌گوید این چه طرز رفتار با اوست آسیابان پاسخ می‌دهد چون عادت داشته قاطر خود را شلاق بزند که تونتر آسیا را بگرداند منو منی روی عادت این کار را ادامه می‌دهد برادرم از طرز رفتار آسیابان ناراحت می‌شود ولی به هر حال ناچاران پنج شش دور آسیاب را به بگردش دمیاورد و بعد از آن خسته و کوفته و بیحال به گوشه‌ای می‌افتد. با این وجود آسیابان با کمال بینصافی به خیاط می‌گوید: "تُن‌تر آسیا را به حرکت در بیاور، به تو شام داده باید کار یک به کنی. بین‌تنی تا صبح خیاط را به کار می‌گیرد و به شلاق می‌بندد و همین که سفیده صبح پدیدار می‌شود، خیاط بیهوش به گوشه‌ای می‌افتد تا آنکه کنیزک های او را که آسیابان با تناب به آسیاب بسته بود باز می‌کند و می‌گوید: "عجب بانوی من و همسرش چه بر سر توی بیچاره آوردند؟ من نمیدانستم آنها قصد دارند تو را به این روز بیاندازند خیاط خسته و بیحال بدون آنکه پاسخی به کنزک بدهد لنگلنگان به سوی خانه خود میرود و از آن لحظه تصمیم میگیرد فکر همسر آسیابان را برای همیشه از سر خارج کند سرگذشت دومین برادر مرد سلمانی دومین برادرم که نام او بربره است دندان ندارد روزی از روزها در شهر گردش میکرده که پیرزنی به او نزدیک میشود و میپرسد میل داری که در یکی از قصعرهای باشکوه با بانوی زیبای اشرافی مدتی را به خوشی بگذرانی برادرم پاسخ میدهد اگر راست بگویی چرا حاضر نیستم سپس پیرزن برادرم را راهنمایی میکند و در طول راه به برادرم میگوید در حضور آن بانوی زیبا و جوان باید با فروتنی یا ادب رفتار کنی، و موضوعات سرگرم کننده بگویی او سخنان زیبا و خنده آور را دوست دارد برادرم هم میگوید از تذکری که به من دادی متشکرم و حتما به همانگونه که گفتی رفتار میکنم وقتی به در ورودی قصد میرسند نگهبانان افسران بسیاری در آنجا ایستاده و نگهبانی میکردند و مانع ورود برادرم میشوند ولی پیرزن اجازه ورود او را میگیرد و به داخل قصد روانی میشوند پیرزن برادرم را به بنای چارگوش بسیار شکوهمندی هدایت می کند که اساسی بسیار گرانمهای آن زینت داده بود و جلوه آن با شکوه قصر هماهنگی داشت و تالارهای زیبا و وسیع در هر طرف دیدی می شدند و باغ بسیار با صفایی همگداید این بنای زیبا را گرفته بود برادرم تاکنون چنین قصری را در عمر خود ندیده بود و مغز تماشای اشیاء گرانبهای آنجا بود که هم همه به گوش او میرسد و میبیند گروهی از کنیزان زیباروی به داخل اتاق میآیند و بانوی زیبایی جوانی که از همه آنها زیباتر است با وقار و بزرگی خاصی گام برمیدارد در میان آنهاست اما همه مشغول خندیدن و صحبت کردنند برادرم متوجه می شود که بانوی زیبایی جوان بانوی این قصر است وقتی بانوی جوان وارد اتاق می شود برادرم به او تذیمی میکند و بانو به او خوشامد میگوید و اشاره به نشستن در کنار خودش میکند و برای برادرم آرزوی خوشبختی مینماید برادرم در پاسخ او میگوید بزرگترین خوشبختی آن است که در حضور بانوی زیبایی چون شما باشم و اکنون خود را خوشبختترین مردان عالم میدانم بانوی زیبا از حاضا جوابی و گفتار برادرم ابراز خشنودی میکند و دستور میدهد که خوردنی یا نوشیدنی و ثبت میوه بیاورند. برند همه گونه وسایل پذیرایی می شود و کنیزکان هم گرداگرده برادرم می نشینند. برادرم که فکر می کرده از اول با بانوی زیبا خلوت خواهد کرد از بودن دهتن کنیزک در حضور بانوی خودشان ناخشنود می شود همین که برادرم شروع به خوردن می کند و همه می بینند که او دندان ندارد به یکدیگر نگاه میکنند و می خندند. برادرم به تصور که بانو از او خوشش آمده و این خنده ها و لبخندها به نشانی اظهار خوشمودی و علاقه به اوست خوشحال میشود و برخود میبالد بعد از مدتی کنیزکان به نواختن موسیقی و آوازخانی میپردازند و بزمی زیبا و شاعرانه برپا میکنند در این لحصه بانوی زیبا هم با زمزمه و آوای دلنشین خود بر جلوهٔ بزن میافزاید سپس شراب میآورند و بانو با اشاره دست برادرم را دعوت می کند که در کناری او بنشیند و جامی از شراب ناب به دست برادرم می‌دهد و جامی هم برای خودش می ریزد و به سلامتی برادرم جامش را به لبهای خود نزدیک می سازد و آن را می و جامی دیگر به همین ترتیب تکرار می شود. برادرم زی جوان سادلوهی بوده یقین می‌کند که مورد علاقه و توجه بانو قرار گرفته است از شادی در پوست خود نمی‌گونجد در این هنگام تعدادی از کنیزان به پای میپردازند می‌پردازند و برادرم برای هماهنگی بیشتر به آنها می‌پیوندد بعد با اشاره بانوی زیبا دوباره در کنار او می‌نشیند و بانو دست خود را روی موهای سر او می‌گذارد و با انگشتانش موهای او را نوازش می‌دهد با احساس گرمی انگشتان ظریف بانو و لبخند نمکین و نگاه افسونگر او چیزی نمانده بود که برادرم از هوش برود بعد از لحظه‌ای برادرم نیز با انگشتان خود گیسوان بانو را نوازش می‌دهد و بانو ناگهان مشت محرمی به گوش برادرم مینوازد که او را از آن حالت عاشقانه خارج می‌سازد برادرم با دلخوری از بانو قضی دورتر می‌نشیند ولی پیرزن با نگاهی خود به او می‌فهماند که قول و قرار خود را با او فراموش نکند و دوباره در کنار بانو بنشیند برادرم همین کار را میکند و بانو با دست خود غذا به دهان او میگذارد و میگوید از خوش و فروتنی شما خوشنود هستم و افرادی مانند شما را دوست دارم و میگوید اگر شما لباس هایتان را درآورید و با و و و شلوار زیر برایم پایکوبی کنید بسیار خوشبخت خواهم شد برادرم لباس هایش را در میآورد و با همان زیر جامع با آهنگی که یکی از کنیزکان میخوانده و بقیه هم با زدن آن را همراهی می به پای کوی مشغول می شود تا وقتی که بانو دوباره او را به سوی خود فرا میخواند و نزد او می نشیند این بار یکی از کنیزخان تلنگور محکمی بر بینی برادرم وارد می آورد که از شدت درد بیطاقت می شود ولی با لبخندی ساختگی آرامش و فروتنی خود را ظاهراً حفظ می کند و پیرزن هم با اشاره خود او را تشویق به آرامش و خوشرفتانی و فرمانبرداری بردانی می کند. سرانجام بانوی زیبا رفتار خوب برادرم را می ستاید و میگوید حالا میخواهم سرگرمی دیگری را آغاز کنیم و جام شراب او و جام خود را از شراب لبیز می سازد و به سلامتی برادرم می نوشد. برادرم از جای خود برخواسته و شراب خود را به سلامتی بانو می نوشد. بعد از آنکه برادرم کنار بانو می و از این باز سرمست بوده به برادرم نزدیک می شود و می گوید بانوی من میل دارد که شما خود را در خیار کنیزخان بگذارید تا آنها ریش و سویل شما را بتراشند و شما را چون بانوان آرایش کنند و بعد با بانوی من در مسابقه دویدن در این تالار شرکت جوید در آغاز این پیشنهان برادرم مخالفت می کند ولی پیرزن با وده و نوید او را نرم می آنگاه چند از کنیزکان سیبیل و ریش او را میتراشند و سپس لباس زنانه به او می و او را به طور کامل آرایش میکنند. خصوصاً که ابروها و لبها و گونه های او را به طور مبالغه آمیزی پر رنگ می سازند. بعد از آرایش و پوشیدن لباس زنانه بانوی جوان پیشنهاد رقص میکند و همراه برادرم و سایر کنیزکان به پای و در حالی که تعدادی از کنیندخان دست پفشانی میکردند بقیه آنها و بانوی زیبا در حال پایکوبی خندههای پیاپی و, و طولانی میکردند در حقیقت برادر ساده لوه را دست انداخته بودند ولی او این ها را نوعی تمجید و ستایش از هنرنمایی و خوششخصاری خود به شمار میآورد. همینکه همین که برای رفع خستگی از پایکوبی به استراحت نشستند پیرزن در گوش برادرم می گوید هنگامی که بانوی من جوانی را بپسندد و بخواهد او را به خود نزدیک سازد میل دارد که در لباس زنانه دنبال او از یک تالار به تالار دیگر بدود و اگر موفق به گرفتن بانوی من شود در واقع بدین ترتیب برتری خود را از حیث تابوکی به او ثابت کرده و بدین طریق مهربانی ویژه او را به سوی خود جلب خواهد کرد برادر ابله من مریان که حتی بیشتر خود را به بانوی زیبا نزدیک سازد فورا این پیشنهاد را پذیرفت و با همان لباس زنانه و آرایش از جای برخاست و به دنبال بانو از این تالار به تالار دیگر میدود و چندین دور با سرعت بانو را دنبال می‌کند و در این احوال تنین زکان خندیدند و دستافشانی میکردند چون از عاقبت کار آگاه بودند برادر من که دیگر از نفس افتاده بود همچنان به امید مهر و عشق بانوی زیبا به دنبال او به تالار دیگر می‌رود و بانو باز وارد قسمت تاری که تالار می شود و از دری پنهانی که فقط او از آن آنگاهی داشت بیرون می رود، ولی برادر من خود را به انتهای تالار می رساند و همین که حس می کند دیگر از بانو اثری نیست به گوشه دیگر که نوری از آنجا میتابید می رود و, و از دری که آنجا بود به خارج قدم می گذارد بدبختان آن در به شاهراه و خیابانی باز می که مردم از آنجا در رفته آمد بودند وقتی میبینند مردی با لباس و آرایش زنانه از قصر همسر وزیر به خیابان آمده حیرت کرده و او را زیر مشتلگت میگیرند و تا توانستند از چپ و راست او را کتک میزنند و بعد هم به نزد حاکم میبرند حاکم دستور میدهد دویست ضربه تازیانه بر پیکر چنین مردی که خود را به شکل بانوان درآورده، بنوازند بعد از جای مجازات برابر دستور حاکم برادرم از شهر خود به شهر دیگری تبعید کردند. این سرگذشت برادر من بود که مانند سایر جوانان سادلو گول پیرزنانی مانند این پیرزن را میخورند. زیرا خانم های اشاف و امرها چنین بازی های را نوعی سرگرمی برای خیش می دانند و توسط این گونه پیرزنان جوانان را به جام می تا با سر و سرگذاشتن آنها قسمتی از اوقات را به تفریح بگذرانند. اینک با اجازه سلطان سرگذشت برادر دیگرم را بیان می کنم سرگزشت سومین برادر سومین برادر من نامش بک بک است او از هر دو چش نامیناست و هر روز به کمک عصای خود در خیابان راه میرفت و از مردم گدایی میکرد او عادت داشت که در خانه ها رو میزد و وقتی صاحب خانه میپرسید کیست که در میزند او پاسخی نمیداد تا صاحب خانه در را بگشاید آن وقت میگفت آدم نابینایی از شما کمک میخواهد روزی برادرم در خانه ای را به صدا در می آورد صاحب خانه از درون خانه می پرسد کیست که در می زند. برادرم روی عادت جوابی نمیدهد. تا آنکه صاحب خانه پس از دو سه بار تکرار همان پرسش عاقبت در را می گوشاید. آن وقت بک بک می گوید به اینا بینا کمکی کنید صاحب خانه هم می گوید دستت را دراز کن برادرم به تصور آنکه می کمکی به او کنند دستش را دراز می کند. آن صاحبخانه او را به داخل خانه میبرد. برادر خوشخیالم خوشحال می شود که او را بستر سفره غذا خواهند نشانید ولی در آنجا صاحبخانه به او میگوید من چیزی ندارم به تو بدهم ولی از خدا را كه که چشمانی بینا به تو مرحمت کند؟ ازش میگوید: چرا این پاسخ را در همان دم در ندادی که مرا تا اینجا آورده ای؟ پس همانگونه هم باید دست مرا بگیری و به سوی در راهنمایی کنید؟ صاحبخانه میگوید؟ در جلوی پای تو پلیکان قرار گرفته کن با کمک چوب دستی خود همین راه را برگردی بچ بچ همین که می‌خواست پلیکان پایین برود یک پله را عوضی پا می‌گذارد و روی پلیکان می‌قلطد و دست او آسیب می‌بیند و کنان به خیابان می‌رود در آنجا دو نابینای دیگر را که از دوستان او بودند از روی صدا میشناسد و با یکدیگر به گفتگو می‌پردازند برادرم می می‌خواهند آنها را به خانه خود برد، ولی در همان خیابان به آنها می گوید من غذا نخوردم و برویم خانه من پول برداریم اتفاقا صاحب خانه‌ای که بک به خانه او رفته بود شوقش را بود و صحبت‌های آن سه گدای نابینا را میشنود و آنها را دنبال میکند. وقتی هر سه نابینا داخل خانه میشوند، راهزن هم پنهانی وارد می‌شود بک میگوید: می‌گوید ده هزار درهمی را که سه بعد از یک ععم گدایی کرده ایم و در نزد من امانت است من در ده کیسهاعت ام ام و دیناری از آن را نداشتم آنگاه کیسه ها را از مخفیگاه بیرون میآورد و جلوی آنها میگذارد و ده در از آن بیرون میآورد و به نابینای دیگر می شما هر کدام ده در بردارید برداری که با آن شام می بخوریم. یکی از سنابینا می گوید من غذای کافی همراه دارم و از داخل کیسه خود مقداری میوه و نان و پنیر بیرون میآورد و شروع به خوردن میکنند ضمنا راهزن هم از نابینایی آنها استفاده میکند و از غذای آنها میخورد از صدای دهان او هنگام قضا خوردن، بس فکر میفهمد بیگانهای در بین آنهاست فریاد میکشد دزد آن وقت دست خود را دراز میکند و بازوی راهزن را میچسبد و هر نفری مشغول کتک زدن یکدیگر میشوند و آن سه نابینا فریاد می‌زنند، آی دوز مردم کمک کنید آی دوز. خود راهزن هم با صدای رساتر فریاد میکشد آی دوز مردم کمک کنید همسایهها بر اثر سر, سر و صدا به بکبک هجوم بک میآورند و در پنجره را که بسته بودی می‌شکنند و وارد اتاق می‌شوند. در همین لحظه راهزن چشمان خود را می‌بندد و حالت آدم نابینا به خود میگیرد و فریاد میکشد آی مردم ما چهار گدای نابیناییم مقداری پول از راه گدایی اندوخته ایم اینا که این پول باید بین ما به طور مساوی تقسیم شوند این سه نفر سخم مرا نمی دهند آن سه گفتند این مرد دروغ میگوید و ما سه نفری پول مختصری پس انداز کرده ایم این شخص خود را بین ما که او را نمیبینیم انداخته است و ادعای او بی اساس است راست هم آنها را متهم به دروغ‌گویی کرد سرانجام هر چهار نفر را نزد قاضی تا به کار آنها رسیدگی کند همین که به نزد قاضی رسیدن